چالش درونی برای ملت ما برادران و خواهران عزیز عبارت است از اینکه روحیه و جهت نهضت امام بزرگوار رو از نظر دور بداریم و فراموش کنیم و اون رو از دست بدیم این بزرگترین خطر است در شناخت دشمنمون اشتباه کنیم در شناخت دوستمون اشتباه کنیم، جوهه دشمن و دوست رو با هم مخلوط کنیم، نفهمیم دشمن کیست، دوست کیست، یا در شناخت دشمن اصلی و فرعی اشتباه بکنیم، این خطر است. توجه داشته باشند برادران عزیز، خواهران عزیز، عموم ملت ایران. گاهی یکی با شما دشمنی میکند اما اگر دقت کنید دشمنی او دشمنی اصلی نیست تابعی است از یک عامل دیگر از یک کس دیگر دشمن اصلی رو پیدا کنید ولی با دشمن فرعی انسان سینه به سینه بشود هم قوای انسان تحلیل میرود هم نتیجه کار نتیجه مطلوبی نخواهد شد